las sell در صورتی که من مفضلان علاق مجروره بازه من صورتی که اضافه هست باز مفضلان علاق چیه اون افتلان اما صورتی اله لام صورتی که با افلامه فزلون علم چیزی که علفلام اشاره یعنی همین از در نمی رسم زیدون علم زیدون علم. در زمانی گفته که من... ما داریم روی افریت زیدیات با هم دیگه بحث می کنی. بعد من بعددم میگم زیدون الافضل عن زید بازه است از اونی که تو میگی در واقع الفلام الفلام نیست شاره دارد مفزل و زید افضل زا دود داره و ما به وسیره حالا اگر این مطلب رو رو دورست فعل اول مفرد مفرد مزکر خلال اومینش کاری به کار این که قطمت ایش مذکور این مزکر دائما اون هندان مفرد زیدان مزکر از زیدون هندان فرقی می کنه افزد اگر افزل و هم بانگه چه هند زیدان, زیدان باشه انداز فرقی وقت زفو من من میشه دا که بعضی از افزل و من هرس بعضی هم. خواهیات همین در الله ان یوسف با خدا بلند اینکه بشه این این مثل سان دو از اونی که بامنه موقع و از مطابقون اصول جامع و, و شما دارید لام اشاره میکنی، با حد اشاره میکنی به اون بینه لام بین داشته باشه من امکان بلای و جامعه نقوه هندان اله کل نه بیال اونید با هنداند و زیدان ال... و هندان دیان ان انکو که باید مطابق و چاره هم بز از جنس همین مزاقی یعنی اگر می کنید را باید اینا رو درد زیباترین مردان چون از اما غلط انسان بگیم زیب زن و زید یه چرا چون زن زن میگه در و و حالت وجازه و, و در این موقع جون این صورت وجازه ابقت و, و در این موقع بکنه آباقت؟ زیدان علما از جنس قصد یکی ویندوتا زید از همه زیدان هست مطابقت کرده بعد، بله. شده چی شده و از زیدان علم و هم اگر گفتیم عالم. هم هم برمیده ناس هم ناس اگر گفتیم علم و هم مطابقه چون حالا هر این قاعده رو فهم این مثال غلط کرد و علا یمتن و یون باز جمع آخه دیدم این به غلطه غلبت بگیم یوسف احسن و اثباتی یوسف ترین برادرانش این به غلطه بگیم یوسف احسن و اثباتی یوسف ترین برادرانش بچه یوسف مفتاد آن پی را خالص از بازید به این یوسف رو بخواهیم در زیبایی بر احضر غلط نست چه در چی باشه؟ برادران یوسف برادران خودش هست یا نیست؟ ها؟ یوسف, خودش. یوسف که خودش داره. خودش برادرانش 11 نفرند یوسف نیستن. ولی دارد. اگر میلیارد یوسف داخل در برادرش نیست این مثال. یوسف خودش چه برادر خودش؟ به <تصفيق> مثال میشه غلط چون یوسف برادران خودش برادرانش یازده نفرن اینجا کدوم اونها یوسف؟ شما گفتید واجب هم. ما از جنس اینجا یوسف هستم برادران یوسف یوسف برادران یوسف برادران, یوسف. برادران یازده نفر، پس اینجا باید چجوری بگیم؟ یوسفا احسن, و نه؟ احسن و من، نه؟ یوسفا من؟ اخوت یعنی چی؟ یعنی یوسف؟ از برادران خود چون داخل و یوسف این مثال این شق تمام شد در بابده. و این تفضیل ها مطلقا قصد بشه یعنی دادن اون مفضل رو صاحب رو بدیم مطلقای یعنی چی؟ یعنی هم بر مضافره لگ هم بر خیل تو نباشه آم باشه یعنی از مضافان نشده باشه آم, باشه. آم باشه. مطلقه. مطلقه میگه فنوق مزکر و چون نهات اجبا این مطلب رو می پس اگر اراده می چی؟ آم خود باید و غیر مطابق؟ این هاشی دیل. هاشی دیل. نوشته با و سنی. این خود درستش کنید. لا ما. نه پی یعنی چی برای نه نحویین به خاطر نه نحویین کردن نه مطابقه باید اینو مرحوم سیدن خانی کنید این تنی این کتاب داره که اینی خیلی بس وازن هیچ هیچده قسم قسمی که شما در این هیچده قسم خوندید این هیچده قسم شما قسم خوندید این هدایه خوندید این باز. بید. معلومت میسه که خدا رحمت کنم همون رو گفتیم چی اگه قصد بشه قبلش. بر شخص مضافان اله نه به طور در اینجا چی میشه مطابق مثل یوسفه ها نگاه کنیم؟ این درشت همون ها که ما از کنیم؟ بگی از اقوید یعنی برادران دید. هم نوعان یوسف ها؟ نیست؟ یا از دید. یعنی دینانش یا از اخوه. یعنی هم جنسانش اونای که انسانن. اونگه اخوته‌ای میشه با هم. اشکالی توش بگید. یعنی یوسف زیبا ترین هم که هم‌قطاران این انسان‌های دیدا. مثلا اون نه اینکه احمق بوده ولی آقای سلام میشه اینطور این عبارت چی میشه؟ بس بس بس. نه با یوسف و احسان اخوات و زیدان چی باید بگیم؟ ما. احسنا اخوات همه هست و زیدان احسنا اخوات ما یعنی چی؟ یعنی احسن و ناس یعنی بهترین مردم است همه مردم در بین برادران دینی که خودش ده یعنی تحضیم که گیریم رو, رو با به عنوان باست در افران هستن و از پدر بولید شدن نگیریم اخبر رو عام بگیریم به برای ناس بشه برگرده به شکل عموم اینجا واجب است متابقه گفتیم اقلی تفسیر اگر از مضافنه بگی قصده چی شده؟ قصده اموم شده در اینجا جایز از متابقت بشه یعنی قصده این شده که بر مفضل بگی چیز بشه در این صورت جایز, است؟ جایز است؟ عدم متابقته لاقول از جنس؟ در مورد اگر نه فقط مقصود نیست مضاف بلکه مطلقا این صورت واجبه مطابقت مطابقت لازم است حالا این که شما خوندید من این احفا نیش کنانویش دید از مثال واش هم پیداست مال جایی هیه که مزافونلی معرفه باشه مال جایی که چی؟ مزافونلیش معرفه باشه. دیدید دمیده اخوت هم حبت شکته اما اگر مزافونلی نکره بود اگر مزافونلی نکره بود در این صورت که مزافونلیش که دست مفرد میاد مثل مثل و من آیا مزافرتی نشود یعنی ما میتونیم بگیم زیدان افضل از بعد از زیدان افضل ها باید حتما اگر شد نکرد بیاد و شاه دیگری خب حالا رسیدیم به قضیه به قضیه یادتون یادتونه که تو هدایت و اونجا ما یه مو توضیح هم دادی درباره تفسیرات حافظه تصویر از این جهت که دلالت بر میکنه می‌کنه نسبت به فعل چیه اهمیت اهمیت شباهتش کمتر. لذا زورش به اندازه ای نیستش که بتونه مثل اسم فایر را به اسم ظاهر به اسم تا میگه و یعنی ها از زمین را مستدر افعال و تفزیر زورش میرسه به زمین را مستدر اون همین مستدر ای کسی ندید نیتونه به زمین را مستدر چکار کنه؟ اتفاقا یعنی به اتفاقا نها. همه ایناها تو گفتن چالیت هست که افعال و تفزیر به زمیر مصطفل رفت بده مشخص چون از اون زیاد اما اسم ظاهر خیلی ولایه همیسه باید به مفعولم به هم برداشت این قدرت زیاد مفعول به بعد از قوی ترین معموله بعد از قوی ترین معموله به چی مفعول به یادون هست شنید مفعول به در کلام پیدا میشد چیجوری دیگه میتونست چی بشه ناگهان مفعول به رو هم قادر نیست به خاطر تو نیست مفعول به و, و اگر یه چیز اون عنوان مفعول به داشتیم یا با با میاد یا یا با میاد یا با لام بسا هم میگم زیدان اعلم اعلم من امره یعنی زید آدم آره تر از را ولی ببینید که مقبولش با یا بالا میاد اعلم و من عمره. نیست که نیز بود به رو قادره بنامه اسم ظاهر رو که رفته میدونه منصوب اون هم که بعد نمیدونه اجماعا این هم باز اتفاق یک و غول الظاهره غليب میگیم این که شما گفت که رفع میده به زمین مستتر اتفاقا یعنی هیچ موقع نمیشه که به اسم ظاهر میگه اگر رفت بده بسار بسیار غلیظه یعنی خیلی خیلی غلیظه و و غول ظاهره یعنی برای اسم ظاهر غلیظ مثال این مثال سیبه نهج جده بگو و رجلا اه هو حم حم من منو ابوه. آه سنا منو ابوه. آن رایجو که لوله، رجلانچیه. ما کود رایجو. آه سنا تو اون این بسیار بسیار قلیله شما هزار مورد از کلام یک مورد چه به دلیل اینکه نیست که و رجل <دل rehearsed> لذا بعضی ها تو کتابی دیداره این مثال رو باید این طور که سیزاره احسنه از عرب نرکرد و بودن بوده ولی اگر بخوای این رو شما بکنید رعایی تو رجالا نه تو این جای دیگه که بخواد نشه احسنو مینوها ابوها احسنو چرا بشه احسنو مینوها قبر قدم مؤخد بعد جمله احسن هم اینوها ابوهو بشه صفت و اون بوقت شاز زیده شاید چون ابوهو خبر داخل احسن یه زمیری مستده اون به زمیره اسم پس چرا یه دونه مثال هست اسم قضیه یه کو. ما در اونجا اون که تونسته چکار کنه افعال تفسیر رفت بده میگه اونجا جایده که افعال تفسیر چه شده شباهتش به فرم زیاد شده و یک سر و زاره این که این رفت دادن به اسم زاهر این رفت دادن به اسم زاهر یک سر زیاده است در کجا زیاد است در وضیعه یه نه در مانند به این مثال نه این مثال حتما مثال مثل ایسی ها ما رعی تو رجالن احسن بی این هر کلا من هو بی این زیر که گفتیم هی چند در شرط داره شرط باش چی بود یکیش جمعه منفیه یک. اون از مجاهدمون با علف یامه درسته؟ دو تا زمیره. یکیش برمیگرده به محصوف یعنی رجال یکیش هم برمیگرده به اسم زاده از شد و یه شده دیگه هم داشت که شکر بر خودش فضیلت داده شده به دو اعتبار به دو اینها مطالبی بود که اونجا نست و هکفت کار رو هم گفتیم که چرا اینجا حفظ فضیل میتونه؟ گفتیم چون نه که بر سر جمعه درات که قید داره نفری میره بکنه به کی؟ به قید نفری میره بکنه به؟ قید مثلا وقتی خدای که حالا میگه لا تمشه فله عرضه مره از خود لغمان لا تمشه فله عرضه مره ها یعنی چی؟ یعنی راه نهو در بوی زمین با خود در حالی که بوز میدید طلقتا رو دکنه حالا خدای که حالا میخواد بگه راه نرکن از راه رفتن یا نرکن از خود دادن خود دادن رو نرکنه میگه راه با خود راه نرکن یعنی راه نرکن راه برو از به دل ناخیست اینجا هست وقتی ما میگه ندیدیم مردی را زیباتر یعنی زیباتر تر ندیدیم اما مرد زیبا چیه؟ اوز دیگه نیست دیو ما اگه واقعاش رو بودیم ذی عالم نیست ذی عالم نیست این نیست که میگه به عالم میگه یعنی عالمتر عالم حال عالم هست اما تریعت بگیر اینجا هم احسن بگیم اون مرد زیبا بود اما احسن نبود و زیبا بودن که خودش میشه صفت مطابق. اون طریعت وقتی ازش گرفته بشه در معنای فیده ما را از که احسن اپی این رو بینه و پیش هم فیدهیشه اینو من ترکیبم گردم اون زماردشون بعد در اینجا معنا چی میشه؟ یعنی ندیدم من مردی را زیباتر در چشمش سرمه از همون سرمه در چشم زده یعنی <سطور> معضی باشه که سرمه ریخته بشه چه چه زیاد باشه از سرمه که تو چشمه زید من نتا یعنی یا صدویه چشمه زید با دیگران بجید مساوی یا سرمه چشمه زید دیگاتر کسی که برتری داشت بر سرمه چشمه زید من کسی که برتری داشت باشه سرمه چشمش بر سرمه چشمه زید من در واقع ما سرمه رو بر سرمه فضیلت دادیم یک بار سرمه در چشم مرد رو یک بار سرمه در چشم زیدی رو البته فضیلت دادن زمانیه که نفر نباشه حالا که نفریت که اصلا فضیلتی در باشه اگر نفری نبود ما سرمه چشم مردی را بر سرمه زیدی به چی بای کرده بودیم فضیلت دادیم حالا که نفتینات اون فضیلت اون طریقه تو مونتاریت برمیداره حالا یا با هم مصابی میشن یا سرمه یه چه در از او خواهد شد ما را ایتو رجلا احسن فی این هرکولو منو فی این زد چرا؟ به انم به معنای کنه میگه زیرا در موقع احسن به معنای فعله چطور میشه احسن به معنای چون طریعتش به وضعیت گرفته میشه وقتی طریعت گرفت مثل اسم فایل میشه دلالت بر موصوف خواهد اسم کنید دیگه زیاده نیستش که بایر بایر بایر بایر بایر بایر بایر بایر چون عقل و تا که یاده داره شباحتش به فعل کمه و زیاده و طریعت ازش گرفته شد شباحتی که تام میشه شباحتی زیاد میشه مثل اسم فایل اینجا یعنی در واقع اینجا احسد این سفت مشبر تارید یا تدار بار بید